امیر عزیزم سلام خیلی خوشحالم که امروز توی نهمین سالگرد شرکتی که با هم براش زحمت کشیدیم دارم برات این ویس میگیرم یکی از پایه ها و ستون اصلی شکل گیری شرکت تو بودی امیدوارم که مثل همین روزذا که داری کار میکنی همیشه قدمات برای توسعه و رشد این شرکت باشه و قطعا با وجود تو خیلی اتفاقات خوبی برای ما تو شرکت خواهد افتاد فکره تو جسمت و ایده هایی که داری همیشه ما کمک میکنه که روبه جلو باشیم و کمک میکنه که یه شرکتی بسازیم که عینش تو ایران نباشه همچنین برات آرزو می که تو زندگی شخصی هم موفق باشیم مثل میشه و باعث افتخارم که تو در اولله برادرم و بعدش با تو همکارم انشالله که قدم که تو این مسیر میذاری همشون جواب بدن و من کنارت باشم با دارفتن تو ببینم و همیشه پوز برادر بودن با تو به همه بدن دوستت دارم مراقب خودت باشی.